و با به نام خداوند جان و خرد این برتر اندیشه بر نگذرد به نام خداوند بخشنده مهربان سلام از میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ برنونی که میشنوید پنجره های به محتاب هست من حمید هدایتی راد هستم و آقای دکتر فریدون جنیدی برایمان داستان داستانهای شاهنامه را میخوند سلام سپاس از حضور شما بر شما شاد باشید شما همینطور انشاءالله انشاءالله همه ایرانیان و همه جهانیان این دوران پادشاهیه که خصو خیلی طول کشیده ها نمیخواد مثل که پادشاهی هم دست برداره خواهی نخواهی سر میاد به همه پادشاهان همه قدرتان زمان و قدرت چون یه روزی با خاک اکسان میشن. این چه عجیب دورانیه حالا با توجه بینید همونطور که شما فرموندید جنگ های زیادی در این دوران اتفاق افتاد و نمیدونم این کینخواهی با صحبت کردیم اصلا نباید به کینخواهی فکر کرد درست چین گذشته و ما اکنون چاره ای نداریم برای گذشته درد از آنست که ما با در حقیقت درمان خودمون در آینده از این گذشته اندوبار بجوریم و آینده جهان رو طوری اصلاح کنیم که در اون کین و جنگ و نعاشتی خودخواهی برطری طلبی نباشه. اگر از این گذشته درس نگیریم، اون موقع؟ بازم همینطوره، دنیا همونطوره درست پیدا میکنم. و چقدر سخت، مثل دوران پادشاهی کیفز بعد خوب، وقتی کارهایی انجام میگیره در تاریخ مبینید که یک گروهی یا یک در یک زمانی اینا گناهکار بودند، بعد اندخی ملتی باید هزاران سال در حقیق تلافی این کارهای گذشتگان رو بدن و ناراحتی بکشند، ستم بکشن به خاطر اینکه یک گروه یا حتی یک کس یک پادشاه در زمان خودش بد کرده بوده. جهان اکثر عمل داره، عمل و اکسال عمله. منطقه بعضی وقتها این اکسال عمل زود سپری میشه، بعضی وقتها به درازه میکشه. نمونه زمانی که بر پادشاهی بیورث بنی زهاق گذشت که هزار سال به درازا کشید ما از در مورد این دو تیم هم که در قسمت اول خواندید من سوال دارم میخواهم بپرسم از کجا بوده چه بخشی بوده در موردش بیشتر بفرمایید و چقدر زیبا بود و دوست دارم اینو من خودم یاد داشتم البته من تلفون های برهم رو ذریعہ اش کنم دو و 2020، چهصد، 85 دو و 2020، چهصد، 85 و 588، 20 سفر دو و و شماره پیامک ۳ یعنی 3 سفر سفر سفر سفر پنج پنج هشت سی هزار پنجصد و پنجاه چون بعضی از دوستان در هم بوده و گفتند به ثر روواتون می که اینطوری میگیم چقدر متوجه خیلی از شما تلفن ها و پیامک ما رو میدونید چ موندگان اما من مجدد هر بار در برنامه ار میکنم به خاطر یادآوری و یادآوری اینکه ما یه کار پژوهشی داریم انجام میدیم شما هم در این پژوهش میخواهییم شرکت کنید. و سوالات خوبتون رو مطرح کنید. چون ما با شما خوب شنیدن و درست پرسیدن رو تمرین میکنیم، آموزش میبینیم، یاد میگیریم برای آیت میکنیم. در مورد این بیت میخواستم از شما پرس... آ پایگاه تلالسانی ما www.radiofarhang.ir هست. عزیزانی که عقامشون خواهد از کشور هستند و میتونن بهشون سفارش رو کنن برنامه های شبکی فرهنگ و همیطور برنامه ما رو از طریق محباره میتونن بشنوند روی خاتبرد اون بخش رادیو ها رادیو فرهنگ رو پیدا کنند و برنامه های رادیو فرهنگ نخوصا برنامه ما رو حتما سفارش کنید که بشنون و این دو بیت از چه قسمت بود؟ این دو بیت از گفترهای... آنو شهروان بزرگ مهر بختکان است اه, که درباره دبیری گفته و شهر داده که دبیری از همه پیشه ها بهتره برای که همراه باخره بفرخنگ است و دبیر شایستون کسی که چون بخواد بنویسه خطش خوب باشه و همراه خط خوب اه, کتاحت... کتاحترین گفتار منظور خود رو بفهمونه یعنی اجازه رو داشته باشه ایجاز در کوتاه ترین گفتار یعنی هر, هر اون چی که میخواد بگه بگید, بگید اما با گفتار کوتاه نه با تکرار و خوب خط نویسی زیبا در خط از ایران و باستان رسید به همه جهانیان اگرچه آثار کم داریم ولی خوب نمونه ها الان موجود هست و این گفتار بهترین گواه هست برای اینکه باید خط رو وقتی میبیسید زیبا باشه گفتار شما هم کوتاه ترین گفتار باشه و گویا باشه یعنی بیان بکنه همین که من دوبار اینو گفتم این جاهیز نیست از دیدگاه بزرگ میر اما خودتون خب شما سوال میفرمایید من برای بارتو گفتم؟ و خط ایرانیان در آغاز چه بوده استاد؟ ما گفته یه روزبه پارسی که بعدها که اسلام پذیروف به نام ابن مقفع نامزد شد گفته است و در کتاب فهرست مفصلن اومده که ایرانیان هفت خط داشتند. یکی هم دبیره بود یعنی دبیره همگانی که اکنون نمونهاش در دست هست یکی دین دبیره بود یعنی دبیره عوستویی بود که کتاب دینی رو با اون می این و این خط هم در اون زمان و هم در این جهان امروز برترین خط جهان شناخته شده دارای 44 علامت دوازده علامت برای آباها داره که دره هیچ خطی در جهان چنین گسترش و گستردهی نیست و خیلی زیبا هست یه تو چون ما آغاز کردیم به کار آموزش سبانهای ایران باستان در بنیادین شبورد بعضی از فرزندان بنیاد نشور که شروع کردن به نوشتن واقعا خطهای خیلی خیلی زیبا دارند و نشون میدن که فرزندان همون نام برداران هستن که به زیبایی می نوشتند من نمیخوام نام ببرم ولی باید بدونید که زیبا خط عرستایی جهان برسیل یکی از فرزندان بنیاد که همکنون در کالفورنیا دکتراشو میگیره نوشته شده خب ما خیلی خوشحال میشن ما نمیگم ازودی اسونی بله. بله و پیشتر از اون فرزندان دیگه ای داشتیم که خطو خیلی خوب نوشتن و حتی به زبان پهلوی شعر سرودن چون این کسانی که به تقلید از اروپاییان در دانشگاه مدرست میونن گمان دارن که زبان پهلوی زبان مرده است و زبان مرده هم زبانی است که نمیشه به اون چیزی افسوس فقط اون چیزی که نوشته شده اونها رو همون رو باید خوند و فرزندانمون نشون دادن که نه این زبان سنتس میشه به شعر سرود اشعار خیلی زیبا به وسیله فرزندان بنیاد نیشابور سرده شده نخستین این اشعار رو سالومه بهشتی سرود و بعد دنبال شد این سرودن این شعرها به وسیله یکی از فرزندان بسیار خوب بنیاد نیشابور که من نام می‌کشم یالبودان و خوب شعر خیلی زیبا و امروز هم ادامه داره maksud این که به اینام دبیره امروز فرزندان ما شعر میگن و می‌خوان نشون بدن که این زبان اونطوری که اروپاییان کمون دارن این زبان مرده نیست این زبان زنده خ آره منم دوست ندارم میگن زبان مرده. خب اون کسی که خودش اندیش مرده باشه نسبت به این زبان ها بتونونه چین احساس ساات داشته باش. درصد یکی از نمونه های خط گشت دبیره بود که سکه ها و قبوله ها رو باعش میذاشتند. و یکی از نمونههایی دیگه که عضو پارسیین نام میبرد نیم گشت است نیم گشت اخیرا پیدا شد و ما در ام بون چند نمونه داریم آقای دکتر شیخلی که از پیشکسوتان ایران وردی در یکی از بارها پیدا کردن و چند نمونه چند تا تحت قراردادی که نیم گشته بوده گرچه استادان دانشگاه گمان بردن که خاطر نمیشه خوند اما خوشبختانه ما اینها رو خوندیم و به زودی منتشر خواهیم کرد نیم گشته یعنی گشته یعنی کاملا خطی شکسته نیم گشته یعنی نیم شکسته یا اینکه که بگیم دبیره خطی است که کاملا شکلش فرق بکن از هم دبیره نیم گشته نزدیک تره نزدیک, تر نزدیک, نزدیک خطه تره خطه بنابراین شکلش شکسته امروز خط فارسی است و اون قوتهای زیبایی که در خطش گسته میبینید البته جهانیان که همه چیز رو در ایران خواهر و بمقدار یعنی اروپاییان که خواهر و بمقدار نشون میدن در خط فارسی دیگه چاره ندارن که گفتن که خط جهانه. هم خود نطرریق و هم شکسته نطریق این دیگه ناچار گفتن. و ما وقتی که این خطا رو میبینیم به خصوص در این نیم گشته ها میبینیم این قوسایی هایی که در شکسته نطریق به کار رفته ریشه داره در ایجانو پوم. این چهار خط که به شما ازاصل کردم شناخته شده است و ما در بنیاد ژور این هم اینها رو البته درس میدیدیم گشتی دبیره رو یکی از استادان به نام نصری فروتن درس میدهیم که با, با اینکه اندارهای همسر و فرزند و خانو و خانواده و سه فرزند تص و گرفتاری ها ولی ایشون وقتی که وارد نژور شد خودش رو کم کم تطبیق داد و خوند و مطالعه کرد و امروز که از استادانه خیلی خوب و نامآور ایران هست و آموزش در زمینه گشتیدبیره میده و البته زبان خوزستانی رو که اروپ بر ما میخوان تفیم کنند که ایلامیه و اونو با عین می که از ایران جدا کنن. در اون زمینه هم ایشون مطالعه خوب کرده و با حرارت و جدیت و با مهر به فرزندان اینها پیش میبره. سه نمونه دیگر خط ما داریم که یکی رازدبیره بوده که امروز از اون چیزی فعلا در دست نداریم ولی من آینده را به آینده امید دارم همطور که نیمگشتر را پیدا کردیم رازدبیرم پیدا بشه. با امید خدا. و شما میدونید که در این جنگ ها اینها همیشه راز بکار میره این خطای راز بکار میره رمزه و رمزها رو این خاطر بکار. گفتم راز دبیر این چند دو هزار پیش ما راز دبیره داشتیم یکی ویسپ دبیره بوده که ما نمیدونیم اون چیه ویسپ یعنی همه ویسپ یعنی همه هم دبیره همگانی بوده یعنی چه دبیره بوده سیصد یا چهار چیز داشته نشانه و علامت داشته که از اون چیزی فعلا در دست نیست این هف خطی از ایران و باستان بوده که اروپاییان میگن که در ایران خط نبود کتاب نبود نوشته نبود مدرسه نبود نظام آموزشی نبود فرهنگستان نبود و دست پروردگان اونا هم در ایران همین سخنان رو میگن و در دانشگاه ها به فرزندان ایران اینا رو میگن اگر فرزند ایرانی در هنگام گرفتن و پرانامه دوشنام به نیاکان خودش نده از دست اینا نمره نمیگیره اما من میبینم که یک حرکت خوب دلپذیر امید وخش نسبت با آینده آغاز شده و جوانان ایرانی میخوان که نیاکان خودشون رو بشنستن این مطالب بود که وابسته بود به گفتار بزرگمیر بختکان انو که جهان خودش رو در راه انتقاد کردن از کسراه از دست اما او همیشه برای ما انو شهربانه. اون لقبی که موبادان ما در ازای کشتارهای کس را او دادن انو شهربان، اون لقب زیبنده بزرگمهر مهر بختکانه که به دست فرمان کس را کشته شد بله حالا پیامک های شما هم که اومد این هم کنم خدمت شما آقای دکتر جنیدی همتون شنوندگان عزیز خدودا دو ساعت قبل از برنامه ما تلفن داریم و پیامک داریم و پرمک اومده من پرمک هم رو سعی میکنم بخوانم در فواصل برنامه انتقادم کردن چقدرم خوب آقای هدایتی شگفت دا که پس از ماه ها هنوز برای استادان گرامی برنامه واژه دکتر را به کار میبرید آفرین دکتر واجه فرانزبیه به جایی میتونی بگین استاد اگر قبول داشته باشه نه به من ولی به دیگران نه من می بعضی وقتا می خب اینم باید بگم دیگه نه باید بگم آه باش <تصفيق> بعد بگیم من نمیدونم حالا چون عادت کردیم ببخشیتر می کنم کمتر این واژه دکتر رو به کار ببرم استاد فیدون جونهدی آه یکی دیگه هم یکی از دوستانم گفته آقای هداری تو رو خدا کمتر حرف بزن زیاد حرف می من نمیدونم شما گوینده اید باید. من اونجایی که لازمه صحبت میکنم من چون باید بپرسم چون این باید باشه در برامر. هم باشه چشم سری میکنم انتقاد کنید از ما از من از برنامه انتقاد سازنده که ما بتونیم برامر خیلی بهتر برای شما عزیزان داشته باشیم در بخش بعدی استاد فریدون جنیدی برای ما از داستان نبرد ایان و توران در دوران پادشاهی یخسرو را خواهند گفت تلفنهای برنامه دیویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج دویست و بیست پاند و هشتاد و هشت دو صفر و شماره پیامک سی هزار پانصد و پنجاو و هشت منتظر صدای گرم شما سوالات خوب شما هستیم یاد بیاوریم که ایرانیان شفست بردند و از رعز با گریختند و توس نوزر پریشان آواره آخرین سخنش این بود که سران بریده سوی تن برید مونه سوی کوه هموان برید و ما امشب در باره پناه گرفتن ایرانیان در کوه هموان با شاهنامه همراه میشیم چون نزدیک کوه هموان رسید بران دامن کوه لشکر کشید. چون این گفت که این کوه سر جای ماست. به باید کنون خیشتن کرد راست. یعنی خودمون رو آماده کنیم برای نورده پرشیم. بشد نزد پیران یکی مجدخواه که کس نیست ایدر از ایران سپاه. زی لشکر به شادی بر آمد خروش به فرمان پیران نادهند گوش. سپه این گفت با بخردان که این نام و پرهنر موبدان چه سازیم و این را چه دانید رایی که اکنون زی دشمن آن جای و من چند بار گفتم که رپایان گمان که مشبرت و مجلس در باره کارهای کشوری از سنای روم آغاز شده اونا اشتباه میکنم برای که از آگاهی ندارن نخستین در حقیقت انجمن میستون جهان در ایران بوده و همطور که می بینید ما شاهنامه ما از انجمن میستون تورانم اوگوهی داره می‌بینید از موبدان و از کسانی که نماینده راه هستند میپرسه که باید چه بکنیم با افسوس بریم ما در یک از بخش‌های شاهنامه از انجمن میستون کشور سومر آگاهی داریم و اینا همین هم نشون می‌ده که این آگاهی ناقص اروپایی قابل اعتنان نیست و خیلی چند هزار سال پیشتر از پدید آباندن روم ما انجامن معیستان داشتیم درباره کارهای کشوری یا درباره کارهای سپا یا درباره کارهای یه شهر یا استان با همدیگه به سگالش میپرداختن بله. بدو گفت هومان که ای پهلوان مرنجان بدین کار چندین روان یعنی این اندازه روان خودتون مرنجان نمانیم تا نزد قصوره شوند. یعنی نمی که ایرانیان برگردن به نزدیک رو به درگاه او لشکری نو شوند. چون این داد پاسخ به دو پهلوان که بیدار دل باش و روشند روان. چنان کن که نیکختر و رای توست که چرخ فلک زیر بالای توست. زیر بالای تو با یعنی اسب. یعنی اسب تو روی چرخ فلک حرکت بکنه. این در حقیقت است که پیران سپهدار توران از هومان برادرش میکنه در اینجا. ستایش زیر بالای تو اینه زیر باره تو. زیر عصب تو. بله. گذین کرد هومان لشکر سوار سپهدار شمشیرزن، زن سی هزار. عبتی اینجا سی هزار اومده و دید من گمان سه هزار. در این هنگامه نبرد سی هزار لشگر رو پرام کردن و با هم حرکت دادن کار هنگامه شگفتیست گوبه سه هزار درست داره و من در جیر نویسی میدادم چه خورشید تابنده به موتاج بگسترد کافور بر تخت آج بر تخت آج آسمان کافور ریخت یعنی روشن شد هوا. پدید آمد از دور گرد سپاه قوی دیدبان آمد از دیدگاه Uh, یعنی دیدگاه ایرانیان دیدن که از طرف توران سپاه داره میاد گرد سپاه رو که دیدن قرد دیدبان یعنی قریبه دیدبانان با فریاد میگفتن برای که زود خبر برسه به از دیدبان به سردار سپاه اشخاصی بودن که در میانه راه میستدن به اندازه که یک نفر که قریب براره صداش با دیگری برسه اون چیزی که شنیده بود پشت میکرد به نفر سوم و نفر سوم به چهارون همینطوری خیلی زود خیلی سری اون اخبار از دیدگاه میرسید به سپهدار لشکر. حالا اینکه که چوبشنید چوبشن بپوشید توس یعنی صدای اینها رو شنید من یک بارم در, در یکی از برنامه ها عرض کردم که وقتی ما کودک بودیم در نشابور و خراسان تو دشت و ها اون موقع این اندازه که ماشین نبود الان شما تو هر جاده روستایی و تو و موتور و, و همه چیز میبینید اون موقع اینطور نبود من بیاد دارم که در یک روستایی از نشابور به نام گفت میگفتن که پلانکست یک نفر رو به نام میگفتن که او صبح زود رفته بالای از دور از جلوگاهای دور صدای ماشین رو شنیده ماشین رو نی ببرن یک نفر افتخارش این بود که صدای ماشین رو شنیده خب اون وقت همه مردم توی جاده ها رفتن و خب هم با و... نه ما هم که سوار اص بودیم یه وقت که می, می تو فلان روستا چند چقدر راه هست می گفت مثلا سجیق راه سجیق راه رو من نمی‌فهمیدم بچه بودن. که یعنی چی؟ حالا می‌بینیم که اینا کسانی بودن که به اندازه ای که یک نفر از اینا بلند بانگ ها که بتونن داد بزنن و نفر طبون و نفر سوم، این میشه سه جیخ را. و امروز اینا همه از دست صفت دیگه. خوشبختانه در شعنامه که کارنامه فرهنگ ما هست باقی مونده و خب به این وسیله هم جوانان ایران اینجوری و خیلی زود خبر میرسید به سردار سبا. تو بشنید جوشن به پوشی توس بر دم بوغ و آوای کورس. سواران و ایران همه همگروه رده برکشیدند بر پیش کوه. هیونی به پیران فرستاد زود یعنی همان هویونی به پیران فرستاد زود که اندیشه ما دگرگونه بود. همه کوه یکسر سر است و کوس. درفش از پس پشت گودرز و توس. چنان کن که چون ورد عمد چاک روز پدید آود از چرخ گیتی فروز تو عیدر بوی ساخته با سپاه شده روی هامون زلشکر لشکر سیاه یعنی با لشکر فراوان بیای که بامداد اینجا باشید فرستاگه نزدیک پیران رسید بجوشید چون گفتهو منشنید بیامد شب تیره هنگام خواب همیران لشکر و کردار آب حومان چنین گفت که از رزمگاه مجمب و مجمبان از در سپاه. اگر شما خاطرتون باشه گفتار پیشین اینا این بود. هومان گفت که ما میریم و نمیگذاریم اینا. میکشیمشون نمیگذاریم که برن به طرف خسرو. ولی الان پیران میگه که از یه در مجمبان سپاه. بیستید همینجا بیستید. یکی جنگ سازیم کیرانیان. نبندنند از این پس به کینه میان به دو گفت پیران که برماست باد من درباره باد صحبت کردم باد وقتی از روبرو میامد اون وقت امکان جنگ کردن برای این سپایی که از روبرو باد بشین باد نبود هم باد میخورد و هم گرد بیابون بلند میشد از سوم و اسمان و این گرد خاک رو میزد به چشم اینا نمیدیدن, بله. نمیدیدن و تقریبا وقتی که باد روبروی یک سپا بیاد اون سپا شکست خوردند. تقریباً از عوامل اصلی پیروزی در جنگینه. گفتم بازم تکرار میکنم این که اون سپایی که از پشت باد بهش میاد باد بهشون یاری میکنه خودشون زیاد کار نکرده ولی پیروز میشن اکثرا این سپا پیروز میشه اینه که در وقتی که کسانی هستن که زیاد کوشش نکردن دار جامعه و پیروز شدن در یه موردی دیگران بهش میگنم باد به پشتش خورده این مسئله اینجاست یعنی که خودش کاری نکرده باد بهش یاری کرده و بعد اون کسانی که ما در یک حقیقت یک گونه نفرینی داریم یک گونه آرزوی بد داریم اون که بهش میگیم وای بر تو وای یعنی باد وای بر تو یعنی در هنگامه نبرد باد رو بری تو بیاد یعنی تو شکسته قطعی بشه این وای بر تو در باره آرزو برای شکست یک کسیست و اون که باد پشتش یعنی خودش در کار کوشش من نمیدونستم وای بر تو یعنی باد به صورت تو بخور خب حالا من یک چیز پس اگر نگفتم چون من نمیدونین یه چیز دیگرم بگم وای زد یعنی هوا وای یعنی هوا. هوای ستایش شده وای زد یعنی هوای ستایش شده هوایی خوب بود وا... که بهش میکنم وایی به در برابر یک وای هم داشتیم که وای وات بهش میگفتن یعنی باد بد که هم با بو گند و لاشه مرده رو اینا بود با اسم استخان شکن بود یعنی این جنازه ها که تو به زمین موندن اینا استخوناشون میشکست و اینا رو فاسد و این وای وات داریم وای خوب داریم وای خوب یکی از ویجیوش این بود که برای دختران که بزرگ شدن و آماده افسر گزینی هستن یاری میکرده به اونا که همسر خوب بگذینند یعنی در اندیشه مردم و در همین وایشت هست که داریم که دختران بسیار زیبایی که مثلا انگوشتان خیلی بلند و ترکیب خوب دارن که انسان از دیدن اون انگوشتان سیری نداره و اینا رو نشستن روی تختها و با بالش ها رو گذاشتن یعنی تخت این بود که تا سه تا بالش چهار تا بالش میداشتن یکی روش می شستن. دو تا تو طرف که دستشون بذارم دی کم پشتشون بود چاربالش، بالش پرستاره چار ب... خور از راه خوبی چون خوبان و چین پرستاره چاربالش بالش نشین اینه در گفتارهای صوفیان میبینیم که برای ابو سعید اول خیر چهار بالش میذاشتن همی شهعین مثل پادشاه ها این بالش هایی که اینا تکه دادن مخصوص اینه و اون وقت اوننا از وای از وای زد میخواند که شوهر خوبیه. خانه خدای خوبی نصیبشون بکنه تا فرزندان خوشکوی خیلی خوبی در آنده از اون شوهران به جامعه هدیه بکنن. اینکه میبینی که می نیاز دوشیزگان از وای یه نیاز لطیفیه. اونا هیچ وقت نمیتونم بگم مثلا ای وای ای وای خیلی ملایم خیلی خیلی لطیف میگن. چون از وای تقاضای خیلی لطیفی دارن. اما مردم وقتی که بگن اگر در هنگامی پیش بیاد میگن ای وای یعنی باد داری به من مخالفت میکنی یا وای بر تو اینها می آهنگ خشن مردانه داره و ای وای دخترکان خیلی جریف و زیباس برای که خواهش زیبایی از اون دارند انشالله همه برای همه دخترانی ما وای ایزد باشه وای یشت باشه که انشالله ازدواج کنند خب می‌فهمم می‌خاید یه فرصتی آبی بنوشید شما هر اختیار شماست برنامه خیلی خب چون پیامک اومده ما پیامک هم بخونیم با عرض سلام خدمت مستی محترم و درود به استاد بزرگ آقای دکتر جنیدی آیا آثار شما به خصوص کتاب مهاجرت و مرگ آریایان به صورت به شکل صوتی وجود دارد یا نه با تشکر اه... محاجرات و مرگ نه با زندگی و محاجر آریاییان این کتاب رو من یک سال پیش نمیشتم و اکنون در دست هست ولی به صورت صورتی نیست متاسفانه من گمان دارم که فرستنده این پیام برای روشندلان عزیز خواستن این رو و دیروز پریزم با یکی از این بانوان که تلفون به من زد و گلمان بود که پیامکش خوانده نشده از من پرسید درباره این کارها و امید دارم در آینده بیاری یک انجمنی است به نام رودکی که ویژه روشندلان هست. این کارها رو به صورت صوتی هم برای روشندلان عزیز کشورمون تقدیم بکنیم. هنوز نشده. پسش دیگه این هست در پیامک که آیا حکیم فردوسی در اشعال و سبک شیریش از شاعری الگو گرفته است یا نه؟ خانون جهانیان از شیراست. خانون یا آقای جهانیان. شاد باشید. اولا خواهش میکنم حکیم برای فردوسی نگید، فردوسی جان و روان ایرانه، کافیس فردوسی، هیچ کس به خورشید لقب دیگه ای نمیده، خرشید خورشیده فردوسی خورشید فرهنگ ایرانه، اون همین کلام و فردوسی برترین نام براش کافیس. همه جهانیان باید بیان شیوه سخن رو از فردوسی بیاموزند، و فردوسی از هیچکس کس در گفتار تقلیب نکرده. زبان یگانه کلام یگانه آهنگ پرشکوه پرتنین همون طور که ویژگی کار بزرگ او یعنی پرداختن به سرگذشت نیاکان فرزان و فردمند بوده در خور شکوه زندگی نیاکان همین گفتار آهنگین بود که از زبان فروسی در صحنه روزگار جریان پیدا کرد بلاد سبکیش هماسی هستش دیگه لازم باشه غیر هماسی هم میشه ما هفته پیش چون دیدیم که از با به نام دیبا یاغوت زرد نوک بله. کرده که بر کشور لاجورد مثلا هم هم چیز کرده یورش کرده نه اینجا خماسی نیست لازم باشه توصیفی هم میشه همه چیز در شهر, شهر هست. همه هست برای که همه چیز در تاریخ یاغا ما بوده بله خب ما پرمک دیگه هم هست پرمک خیلی میکنم یه خوده شاید طول بکشه بادرود لطفایید به صورت فهرستوار زمان و دوره پادشاهی پادشاهی را بگویید که به این صورت که مثلا حوادث مربوط به کیخست را کی پیش آمده با سپاس بای فهندش من نفهمیدم یعنی چیم نه من میفهمم چیم چون که در شانومه این سال ها نایمده بعد ما این سال ها را موقعی که زندگی محجد آریایان را می نوشتیم کاملا این سالها رو نمی دونستیم. مثلا از کجا به اینجا؟ بله مثلا فرض کنیم که برای آغاز دوری بی ورس بیانیزه من اونجا شش هزار سال پیش فکر کرده بودم که بعد معلوم شد هفت هزار ساله. یک رویداد هایی که در زمین اتفاق افتاده که دانش امروز زمین شناسی اون رویداد ها رو برای ما معین میکنه. ما اون رویدادها رو در بنیاد شور فقط در باد شعبور. البته شخصیت فرزان که در کار زمین هست استاد پدرگوار مانوئل بربریانه که نخستین عضو یاد نشابور بود و ایشون اکنون آکادمی علوم نیویورک رو داره یکی از برترین زمین شناسان جهان هست در این باره با ما یاوری کرده ما رویدادهای های زمین رو که امروز میتونیم زمانش رو پیدا بکنیم با رویدادهای های با هم دیگه برابر گذاشتیم و این سالها پیدا شده و بله که خصو. پیشتر از چهار زارده بیشت سال پیش بوده به موقع خودش من باز بیشتر خواهم گفت اما اجازه بدید این مسائل در کتاب داستان ایران که دیگه مراحل آخر چاپش رو تهی میکنه یعنی سفر بندی اینا چاپ تهی میکنه به دستتون برسه در اونجا تمام این رویدادها ها رو ما زمان بندی کردیم سپاس شما شنبنده برنامه, برنامه پنجره خواهی رو به محتاب هستید آقای دکت درباره شاهنامه فردوسی داستان های شاهنامه برای ما میگویند با تلفن های 2204صد 85 دو20، 4صد 85، دو 588 5۸، دو صفر 20 و شماره پیامک ۳ ۵۵ و8، تماس بگیرید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید مطالبی رو که میخوایید بفرمایید ما گوش میدیم و سوالات رو از آقای دکتر از آقای از استاد فریدون جونه چقدر سرق شده <تصفيق> از استاد فریدون جونه دی میپرسید گوف پیران که بر ماست باد نکرده است با باد کس راز یاد چو راه تنگ شد بر سپاه کسی کوه خارا ندارد نگاه یعنی ایرانیان موقعی که علف برای اسپاشون پیدا نکردند دیگه روی اون سنگ خارا نمیمونند همه لشکر آید به زنار ما از اون پس نجویند پیکار ما بر ایشان کنون جای بخشایش است نه هنگام پیکار آریش است. آرائش این آرائش سپاه. از اون پس چه آمد به خسرو خبر که پیران شد از رعزم پیروزگر، سپاه بد به کوه هماون کشید، لشکر بسی گرد شد نابدید، بفرمود تا رستم هم خرامت به درگاه با انجامن. رفتن زیران همه بخردان مخصوص اینجا انجمن انجامن محیستانه. یعنی رستن در انجمن محیستان تا در این باره سگالش بکنن. رفتن زیران همه بخردان جهان دیگه و نامور موبدان می‌بینید، شعر میده که موبدان و بخردان و کسانی که نامور بودند برای سگالش به انجمن محیستان رفتن. انجمنی که با حضور که خسرو و رستن به همه پهلوان میخواد که در باره جنگ تصمیم ب سر نامداران سخون برگ و پیکار لشکر بسی کردیاد. سر کی نکی خسره. چنین گفت که سرفراز فراز. بترسم که این دولت دیریاز همی برگراید به سوی نشیب. دلم کردار او پر پرنهیب. یعنی از کردار این جهان. تویی پربرباننده تاج و تخت، فروغ از تو گیرد جهاندار و بخت یعنی فروغ و بخت پادشاه جهاندار فروغ و بخت خودش رو از تو میگیره زمین گرد رخش تو را یابر است زمان بر تو چون مهربان مادر است زتیغ تو خورشید بریان شود زه تو ناهید گریان شود تو تا بر نهادی به مردی کلاه نکرد هیچ دشمن به ایران نگاه کنون گیو و گودرز و توس و سران فراوان از این مرز، گنداوران، همه در پر از خون و دید پراب، گلیگزان، زگردان، افراسیاب، امید سپاه و سپه به توست، که روخشم روان بادی و تندرست. واسخ چونین گفت رستن به شاه که بیتو تو ما نگین و کلاه که بافر فر و برزی و رای و داد ندارد تو شاه گردون بیاد. شنیده است و که تا قباد کلاه بزرگی به سر برنهاد به ایران بکین من کمر بستم و آرام یک روز ننشستم، تو شاه نوعینی و من رهی میان بستهام چون تو فرمان دهی شوم با سپاهی کمر برمیان بگردانمی بد از ایرانیان از آن کشتگان شاه درد باد روخ خب بسهگالان او زرد باد بدو گفت بی تو نخواهم زمان، نه اورنگ و تاج و نه گرز و کمان، فلک زیر خم کمند تو باد، سر تاجداران به بند تو باد، زدینا رو از گنج و تاج و گهر کلاه و کمان و کمند و کمر، تو با گرزداران زابلستان، دلیران و شیران کابلستان، همی رو به کردار باد دمان، مجوی و مفرمای جستن، زمان نه خود زمان یعنی درنگ بکن نه فرمان بده به سپاه که درنگ بکنه دوستان زمان نمی‌گیم یعنی فریبوز کابوس را ده سپاه که او پیشرو باشد و ها تمام تن زمین را ببوسید و گفت که من با انان و رکی از جفت که با من ببخشید که با من انان و رکی بس جفت سران را و سران در شتاب آورم موادا که آرام و خواب آورم سپه را درم دادن آغاز کرد به دشت آمد و رزم را ساز کرد خریبور را گفت برگشت پگاه سپاه هندر آورد به پیش سپاه یعنی به طرف سپاهیان ایران که در کوه همون هستند برو نباید که روز و شبان یا نباید به روز و به شب بغنوی مگر نزد توسه سپه بد شبه من این اکل کردار باد دمان بیایم. نجویم به رهبر زمان. اینجوری یک رمزی داره. با اون که پیداست که وقتی که رستم میخواد با سپاهیان کابلستان، و زابلستان حرکت کنه به میدان جنگ از فریبرز که بر فراز کوههای البرز کنونی بوده دورتره. یعنی فرمان اینه که فریبورز حرکت بکنه و روستان هم حرکت بکنه. منطقه فریبورز دورتر میرسه. اینی که تو فردا تو فردو حرکت کن منم از پشت سر تو خواهم اومد این رمز داستانه بلد. از سیستان دورتره دیگه بله بله بله عرامت خروشیدن کرناوی تهمتان در آورد لشکرد جای پرندیش جان جهاندار شاه دو فرسند با او بیا آمد براه